کتاب داستان‌ها و افسانه‌های مردم پاکستان نویسنده کومال لاکمن مترجم مهداد مهدویان ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده نازنین زهر صفی امانت مقدس روزی روزگاری پادشاهی بود که به تنها دخترش عیاقه عجیبی داشت. دختر مثل قنچای باز شده بود و توی زیبایی و جذابیت هم تا نداشت. توی اون زمان پدر و مادرها از دخترهاشون مثل یه امانت مقدس نگهداری می کردن. ملکه اون سرزمین یه روز به پادشاه گفت که باید یه شخص مناسب رو برای دخترشون پیدا کنه. پادشاه باورش نمیشد، ولی خوب می دونست که باید قبول کنه دختر قنچه مانندش حالا دیگه تبدیل به یک گل زیبا شده و دیگه امکان نگهداری عطر خوشبوی اون توی حیطه قصر نیست. جدایی برای پادشاه خیلی سخت بود ولی خوب میدونست که به هر حال دخترش باید یه روز ازدواج کنه. روز بعد مامورای پادشاه برای پیدا کردن یه داماد مناسب به اطراف و اکناف قلم و به اون رفتن. اونها جهار میزدن که پادشاه حاضر به پذیرفتن هر مرد جوونیه که دوتا شرط داشته باشه. مامورای پادشاه یه تبل رو وسط باغ گذاشتن و قرار بر این بود که هر خواستگاری که اومد تقاضای خودش را با کوبیدن روی اون اعلام کنه. خیلی از مردهای جوون اومدن و خواستن که این کار رو بکنن. ولی نه تنها موفق نشدن بلکه توی این راه همه ثروت خودشون رو از دست دادن و سرفگنده برگشتن. مدت زیادی گذشت ولی هیچ کس موفق به ازدواج با شاهزاده خانم نشد. پادشاه از اینکه کسی نتونسته بود دختر عزیزش رو از دستش بگیره خوشحال بود. آخه تعداد مردهای جوونی که مراجعه می‌کردن روز به روز زیادتر میشد و به این ترتیب خبر زیبایی و جذابیت شاهزاده خانم به دور دست ها رسید. به خصوص به گوش ای رسید که همون موقع به شاهزاده خانم دلباخت. این شاهزاده از شدت حلقه زیاد به دختر روز به روز نحیف و لاغر تر می میشد اون تنها فرزند خانواده بود و میدونست که اجازه مسافرت به جاهای دور را نداره به هر حال یه شب تاریک و آروم شاهزاده قصر رو ترک کرد و مقدار زیادی طلا و جواهر باره اسب سلطنتی خودش کرد و به سمت سرزمین عشق زندگیش براه افتاد بعد از طی کردن یه مسافت طولانی به اونجا رسید و توی خونه ای منزل کرد. اون دو روز تمام توی اطراف شهر گشت تا اطلاعاتی رو جمع‌آوری کنه. روز سوم که به محیط اطرافش عادت کرد، یردای درخشان و براق پوشید و سوار اسب سلطنتی شد و به طرف قصر سلطنتی به حرکت درومد. مدت طولانی بود که کسی روی تابل نکوبیده بود و حالا که پادشاه صدای نواختن اون رو میشنید تعجب کرد. معموری رو برای جو فرستاد. اون بعد از مدت کوتاهی برگشت و اجازه ورود جوون رو به دربار صادر کرد و اون وارد شد. شاهزاده کیسهای کیسه ای پر از کی طلا روی پاهای پادشاه گذاشت و تعظیم کرد. و در نهایت اخلاص ادای احترام کرد. پادشاه از سکه های طلا و رفتار بزرگ منشانه مرد جوون خوشش اومد و گفت چه چیزی تو رو به اینجا کشونده؟ شاهزاده گفت قرمانت کردم. من از یه راه دور اومدم و میخوام با شاهزاده خانوم ازدواج کنم. شنیدم که دختر شما توی زیبای جذابیت بین نظیره. استدعا دارم که به من اجازه بدین که شرط ها رو بشنوم شاید بتونم برنده ای مسابقه بشم پادشاه گفت ای مرد جوون تو من رو کاملا تحت تاثیر قرار دادی ولی باید به تو هشدار بدم که خیلی از نجیب زاده ها توی این راه قدم گذاشتن ولی موفق نشدن و همشون بعد از به رفتن ثروتشون با سرفکندگی به خونه برگشتن و ثروت اونها به خزانه واریس شده بهتر نیست دوباره فکر کنی؟ عجلهی در کار نیست خوب فکرات رو بکن و چند روز دیگه پر کرد شاهزاده گفت گربانت کردم من مدت طولانی روی این مسئله فکر کردم حالا دیگه نمیخوام وقت تلف کنم پس اگه شما هم راضی باشید حاضر بشینیدن شرط های شما هستم شاه به خوبی حدس میزد که منظور این شاهزاده معامله با اونه پس گفت مرد جوون گوش کن اولین شرط خیلی ساده است توی جشن عروسی هیچ مرد و زنی نباید حتی یه تاریموی خاکستری روی سرشون داشته باشند شما اول برین و معمای اول رو حل کنید تا برسه به دومی تازه معمای بعدی به این سادگی ها هم نیست و به این ترتیب پادشاه شاهزاده رو مرخص کرد و برای کارهای خصوصیش داخل قصر رفت. خیلی از شما ممکنه بگین که چه شرط احمقانه ای. ولی در حقیقت باید بگم که توی اون زمان این معما خیلی هم احمقانه نبود. آخه توی اون زمان مراسم ازدواج خیلی کسل کننده بود و اکثر مردم توی اون شرکت میکردن و امکان نداشت که توی این کسی پیدا بشه که موی خاکستری نداشته باشه. اون به سرعت به کشورش برگشت تا با مهمانهای مراسم ازدواج برگرده. پدر و مادرش خواست داده که از غیب شدن اون بی انداز شده بودن از اینکه اون رو صحیح و سالم میدیدن خیلی زوغ کردند. و مقدمات اعزام مهمون ها به کشور شاهزاده خانم انجام شد. شاهزاده ما توی انتخاب مهموناش مختار بود. پس فقط مرد و زنان جوان را انتخاب کرد. البته مشکل مهمی باقی موند و اون این بود که آخه اون چطوری میتونست بدون حضور پدر و مادرش جشن ازدواج برگزار کنه؟ اونها هر دو موسن بودن و دارای موی خاکستری بودن پادشاه فهمید که به سرش قصد داره و چیزی رو از اون پنهون میکنه. یه روز با صبر و حسله تمام از شاستاده خواست تا حقیقت رو بگه. پادشاه زیرک قضیه رو فهمید و راه حلی برای این مسئله پیدا کرد. به پسرش گفت فرزند عزیزم این پادشاه خیلی زرنگه و مطمئن میخواد حقی پیاده کنه. تحت این شرایط لازمه که من و مادر با تو همراه باشیم تا با هم مشورت کنیم ولی هیچ کس نباید ما رو ببینه جعبه ها و کیسه‌های زیادی برای مراسم ازدواج تدارک دیده شد و همراه این ها دستور حمل دو جعبه بزرگ هم داده شد آخ ملکه و پادشاه همراه قافله عروسی توی این جعبه مخفی شده بودند کاروان اونها بیرون پایتخت تخت قلم رو و عروس اردو زد و شاه زده برای پادشاه پیهی فرستاد. روز بعد پادشاه و درباریان از اردو دیدن کردند تا مطمئن بشن که شرط اول کاملا اجرا شده. بعد از دیدن مهمونها شاه شرط دوم رو به اون گفت و اون این بود که فردا قبل از طول آفتاب مردای من پنج کیلو برنج و یه بشک آب رو به اردوی شما میارن و شما باید کاری کنید که همه این غذا و آب تا قبل از قروب آفتاب مصرف بشه. اگر نتونی این کار رو بکنی تمام انوالت مصادره و همه همراهانت و خودت رو از اینجا بیرون میکنن. و یادت هم باشه که حتی یه دونه برنج هم نباید دور ریخته بشه. و حتی یک قطر آب هم نباید روی زمین بیچکه. این یکی واقعا مشکل بود و هیچ کدوم از همراه های شاهزاده نتونستن راه حلی برای اون پیدا کنن. نیمه های شب بود که شاهزاده جعبه های بزرگ رو باز کرد تا به پدر و مادرش مشورت کنه. پادشاه به اون گفت طوری برنج ها رو بپذید که وقتی بین مهمون‌ها توضیح میشه به هر کدوم اونها مقدار خیلی کمی برسه. تمام طول روز این کار رو تکرار کنید. به لطف خدای بزرگ همه ای برنج ها خورده میشه و حتی یه دونه برنج هم هدر نمیره. مادرش گفت آب داخل بوشک رو هم به همین شکل مصرف کنید. هر دفعه یک یا دو تانگ رو بینه همه قسمت کنید و مطمئن باشید که به هر کس بیشتر از یک جرعه نمیرسه امید دارم که به لطف خدا پیروز میشید روز بعد دقیقاً بعد از غروب آفتاب پادشاه به اردو رفت و مطمئن بود که روی طلا و جواهر زیادی دست میذاره ولی وقتی به اونجا رسید خیلی قافل گیر شد آخه دید که حتی یه یدونهای برنج هم به هدر نرفته و بشکهٔ آب خالیه حالا شاهزاده میتونست با شاهزاده خانم ازدواج کنه پادشاه مرد جوون رو بغل کرد و ترتیب عروسی رو داد و از درباریان خواست که ساعت عقد رو تعیین کنند بعد رو به شاهزاده کرد و گفت مرد جوون تو های من رو اجرا کردی من هم در عوض ازدواج تو و دخترم رو اعلام کنم آخه این قول قوله پادشاه او و تو اصلا نماید در این مورد شک کنی ولی خب من هنوز در مورد تو مشکوکم تو چطوری شرط دوم رو بدون مشورت و بزرگ طراحات انجام دادی احتمالا در این مورد با اشخاص مستنی مشورت کردی ولی من خودم دیدم که حتی یادم با موی خاکستری توی اردو نبود پس راستشو بگو چی کار کردی؟ شاهزاده یواشکی پادشاه رو سر دو جهبه بزرگ برد و سر اون رو باز کرد و پدر و مادرش رو به اون معرفی کرد. دو پادشاه در کمال احترام و محبت و وقار با هم روبوسی کردند. شاهزاده همراه همه مهمونان به عنوان مهمونهای ویژه به دربار برده شدند. جشنهایی برای چند روز متوالی برگزار شد. بعد توی روز و ساعت معین خطبه ی عقد شاهزاده زیبا و شاهزاده خانم جذاب جاری شد. حالا امانت مقدس به دست یک انسان شایسته و درست کار سپرده شده بود. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها